دوستان، در مویزه سرکوه، کوه عیسی مسیح درباره پادشاهی خدا صحبت میکنه یا بهتر بگیم درباره فرهنگ و خصوصیات پادشاهی خدا و کسانی که در اون زندگی میکنن صحبت میکنه سلام عزیزان به دانشکدی کوچکه کتاب مقدس خوش اومدین. خوشحالیم که تصمیم گرفتین در ادامه بررسی موعظه سر کوه با ما همراه باشین معلم ما در ادامه این سری از درس‌ها، های بسیار عملی از تعالیم عمیق ناجی و خداوندمون عیسی مسیح ارائه می‌کنه که در زندگیهامون به کار بگیریم. دعا می کنیم این درس ها به شما کمک کنه تا وارد کلام خدا بشین و اجازه بدین کلام خدا وارد شما بشه. بیاید با هم گوش کنیم. خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می‌کنند و جفا می‌رسانند.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 آیاتی رو که خوندم از متا 5 آیات 11 تا شانزده بود. ما اکنون در حال بررسی معزه سر کوه یا تعالیم ایسا در بالای کوه هستیم که قصدش تبدیل شاگردان به نمک روی زمین و نور جهان و چراغی بر روی چراغ پایه و شهری بنا شده بر بالای کوه بود که نمیشد مخفی کرد. در درس قبلی معزه سر کوه گفتیم که عیسی این تعالیم رو با یک چکاپ روحانی برای اطمینان از سلامت روحانی ما شروع میکنه. او با تعلیم درباره رفتارها شروع میکنه. او درباره این هشت رفتار زیبا با ما صحبت کرده و گفته کسانی که این رفتارها رو دارند در جایگاه فیض یا کامیابی روحانی یا شادی و برکت قرار دارند. و یا میتونید به اونها شاگردان کامل بگید. او بر رفتارها تمرکز کرده و بعد وعده هایی رو که به همراه هر یک از رفتارها بود، عنوان کرده و بسیاری از محققین احساس می کنند که وقتی ایسا هشت خوشابهال رو تموم کرد، در واقع تعالیم خاتمه یافته و حالا کاربورت ها رو شروع می کنه. وقتی کتاب مقدس رو مطالعه می کردیم، گفتم که هنگام متعالیه کتاب مقدس همیشه باید این سه سؤال رو مد نظر داشته باشیم. معنی اون چیه و برای من چه مفهومی داره؟ یا اگر شما تعلیم میدید معنی اون برای کسانی که تعلیم میگیرن چیه به سوال اول یعنی اون چی میگه مشاهده میگند این جاییه که ما باید تکالیفمون رو انجام بدیم اون واقعا چی میگه و اون چی نمیگه این جاییه که لازم از روح القدس بخواهید که به شما بصیرت روحانی بده وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنید اولین سوالی که باید بپرسید اینه اون چی میگه این مشاهده هست. سوال معنی این چیه تفسیر هست. آیه همیشه معنیش چیزیه که میگه. اما شاید شما مجبور بشید خیلی سخت کار کنید تا بفهمیدون چی میگه. اما بعد قسمت مهم مطالعه کتاب مقدس کاربرد هست. کتاب مقدس وقتی اون رو در زندگیهامون به کار میگیریم تبدیل به قدرتی در زندگی ما میشه. پس سؤال مهم وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنید این هست مفهوم اون برای من چیه اگر تعلیم میدید بعد از اینکه اون سوال رو برای خودتون جواب دادید سوال مهم این هست معنی اون برای کسانی که به اونها تعلیم میدم چی هست وقتی شما کتاب مقدس رو تعلیم میدید کارورد بخشی هست که مردم از اون قدردانی میکنن عیسی این هشت رفتار زیبا رو تعلیم میده و بعد از ابتدای آیه یازده شروع میکنه به دادن کاربرد اونها به اعلامیه 8 خوشا توجه کنید خوشا آنها خوشا حال کسانی که این نسبتا غیر شخصی هست. اما بعد وقتی به آیه یازده میرسه میگه خوشحال باشی اگر به خاطر من به شما اهانت میکنند و جفا میرسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما میزنند خوشحال باشی حالا اون کاربرد هست. او رو به افرادی میکنه که در اطرافش نشستند و صحبتهاش رو شخصی میکنه. اون رو کاربوردی میکنه. بسیاری از محققین احساس میکنند که در آیه 11 تا 5 کاربورد شروع میشه و با پایان تعلیم این خوشا به شروع میشه و در سرتاسر بقیه موعظه سرکو ادامه پیدا میکنه. مارتین لوید جونز یکی از محققین کتاب مقدس مورد علاقه من کتابی در مورد این تعالیم نوشته به نام سرکو او در کتابش میگه زمینه این تعالیم سه چیز به ما میگوید اول بحران مربوط به مسیحی شدن را توضیح میدهد این روشیه که متان رو اظهار میکنه در بحران مربوط به مسیحی شدن موضوع عضوی از پادشاهی خداوند شدن هست ها در مورد عرضش این پادشاهی با ما حرف میزنن حالا اولین چیزی که این تعالیم به ما نشون میدن بحران مربوط به یک مسیحی شدن هست موضوع این نیست که به عیسی بگوییم برای من چیکار خواهی کرد اونطور که متا عنوان میکنه واقعا موضوع گفتن این هست که خدایا از من خواهی برایت چیکار کنم بنا گفته مارتین لوید جونز دومین چیزی که این تعالیم در خوشا به حالها به ما نشون میدن شخصیت مربوط به مسیحی شدن هست عیسی در این مورد بسیار عملی هست چیزی که او میگه اینه که اون مردم پایین کوه با تمام مشکلاتشان نیازی به صحبت‌های مذهبی یا الهیات ندارد. چیزی که اونها نیاز دارند دیدن مردمی هست که واقعی هستند. دیدن کسانی هست که شخصیتشون مسیحیه. شخصیتشون مسیحگونه است. حالا وقتی یک انسان شخصیتی مانند مسیح داره با فیض خدا چه نوع شخصیتی خواهد داشت؟ این در خوشا هشتم برای ما به تصویر کشیده شده. خوشا شخصیت مربوط به مسیحی شدن را نشون در تمام طول تاریخ مسیحیت دنیا به کسانی نیاز داشته که نه تنها ادعا می کنند مسیحی بلکه به کسانی نیازمند بوده که مانند یک مسیحی عمل می کنند کلمه مسیحی کلمه جالبی هست عملا معنیش کسانی هستند که شبیه مسیح هند. یا مثل مسیحان کوچک هستند این کلمه مسیحی کلمه که غیر ایمانداران برای توصیف پیروان عیسی کار می‌برند. این کلمه فقط سه بار در انجیل استفاده شده. دو بار مورد استفاده غیر ایمانداران بوده که به پیروان مسیح شاره میکنه. این غیر ایمانداران هستند که میگن میدونید چیه اون مردم شبیه مسیح هستند. اون کلمه فقط یک بار توسط یک ایماندار استفاده شده و اون شخص پتروس هست که گفته اگر به خاطر مسیحی بودن رنج می‌برید. ناراحت نباشید این یک دعوت هست. وقتی او به ما میگه چطور باید در انتظار رنج به خاطر پیروی مسیح باشیم از کلمه مسیحی استفاده میکنه عملا کلمه مسیحی کلمه‌ای نیست که روح القدس برای توصیف پیروان عیسی انتخاب کرده باشه مثلا عیسی هیچ کس رو یک مسیحی خطاب نکرده او هرگز از کسی نخواسته که یک مسیحی بشه پولس رسول هم هرگز کسی رو مسیحی خطاب نکرده او هرگز از کسی نخواسته که مسیحی بشه. عیسی از کلماتی مثل ایماندار استفاده می کرد. او از مردم می ایمان بیاورند. کلمه مورد علاقه عیسی کلمه شاگرد بود که کلمه زیبایی هست. یک شاگرد یادگیرندهی هست که عمل می و یا یک عمل که یاد می اون مثل یک کاراموز هست. عیسی از اون کلمه زیاد استفاده می کرد. او همچنین از کلمه رسول استفاده کرد. ایسا از بین جمع کسیر شاگردان به دوازده رسول معموریت داد که به معنی فرستاده هست جدا شده و فرستاده شده معنی کلمه اون هست چیزی مثل کلمه میسیونر امروزیه پولس رسول از کلمات شاگرد رسول و همچنین مقدس استفاده می کرد که به معنی جدا شده هست کسی که برای مسیح جدا شده و مسیح را پیروی می کنه. کلمه مقدس لقب کسی هست که تقدیس شده اینها کلماتی بودند که عیسی و پولس به کار می‌بردند اونها از کلمه مسیحی استفاده نمی‌کردند این کلمه فقط سه بار در کتاب مقدس به کار رفته اما اگر شما می‌خواهید از این کلمه استفاده کنید باید بفهمید معنی اون چیه اون به معنی شبیه مسیح است این واقعا فروتنانه نیست که بگید شما شبیه مسیح هستی. اما می‌تونید بفهمید چطور دیگران حتی غیر ایمانداران شما را متهم می کنند که شبیه مسیح هستی. سوال اینه که وقتی به عنوان شبیه مسیح مرد اتهام قرار می گیرید، آیا شواهد کافی هست که شما را محکوم کنه؟ آیا هیچ مبنایی برای گفتن این هست که شما شبیه مسیح هستی؟ زمینه این تعلیم بزرگ بحرانهای مربوط به مسیحی شدن رو نشون میده و بعد خوشابهالها شخصیت مربوط به مسیحی بودن رو نشون میدن اما بعد دکتر مارتین لو جونز میگه از ابتدای آیه یازده تا آخر مععزه سر کو چیزی که دارید چالشی مربوط به زمانی هست که شخصیت مسیحی بر فرهنگ تأثیر میذاره فرهنگ چیه؟ این روزها ما کلمه فرهنگ رو زیاد به کار میبریم یه نفر گفته معنی کلمه فرهنگ این هست روشی که ما کارها رو انجام میدیم وقتی میسیونرها به کشورهایی فرستاده میشند که برای اونها بیگانه هست، به اونها گفته میشه قبل از رفتن به اونجا فرهنگ اونها رو مطالعه کنند تا بتونند با آنها سازگار بشن و مردم اون فرهنگ رو نرنجونند. تا حدود زیادی این کار عجیبی برای میسیونرها هست. از یک نظر اونها باید آگاه و حساس باشند که فرهنگ اونجا چی هست تا حتی به طور غیر عمدی هم باعث رنجش کسی نشه. اما باید یادمون باشه که عیسی به این دنیا اومد تا فرهنگ رو متحول کنه و تغییر بده. نقشه و راهکار او تغییر فرهنگ توسط تغییر قلب انسان بود. روش های زیادی هست که میتونیم اینو به تصویر بکشیم. عیسی مسیح یک انقلابی بود. هدف و راهکار او این بود که فرهنگ را با متحول کردن قلب های مردان و زنان متحول بکنه. به این دلیل او گفت اگر شما این هشت رفتار زیبا رو داشته باشید نمک روی زمین و نور جهان خواهید شد خادمی که خیلی مورد احترام و علاقه من هست روزی می میگفت میدونید بزرگترین دشمن ایمان فرهنگه بسیاری از مردم میگن وقتی شما شروع میکنید به نشون دادن ایمان مسیح و ایمان به مسیح فرهنگ اون رو تحمل نمیکنه ما لازمه که نسبت به فرهنگ حساس باشیم اما باید یادمون باشه که از بسیاری جهات مسیحیت باید فرهنگ رو متحول بکنه این چیزیه که شما اینجا در معزه سرکوه دارید تعالیم نشاندهنده ی واقعیتهایی هستند که فرهنگ رو متحول خواهد کرد حالا وقتی که ایسا اون چهار مثال در آیات سیزده تا شانزده رو به ما میده در واقع به همون کار اقدام میکنه شما نمک روی زمین هستید شما نور جهان هستید شما مثل شهری هستید که بر بنا شدید. و نمیشه مخفی کرد شما مانند چراغی در چراغ چراغپایه هستید اگه واقعا این هش رفتار زیبا رو درک کنید و اگر با فیض خدا اونها واقعیت زندگی شما بشن اون وقت شما این چهار چیز هستید به گفته دکتر جونز اینها چالشی هستند مربوط به اینکه وقتی این نوع شخصیت توسط خوشا بحال ها داده شدن بر فرهنگ تأثیر میذارن حالا بذارید اونها رو یکی یکی نگاه کنید. شما نمک روی زمین هستید ترجمه در زبان اصلی یونانی این هست شما و تنها شما نمک روی زمین هستید وقتی عیسی این مثال رو میزد منظورش چی بود؟ جوابهای زیادی برای این سوال هست بعضیها شاید بگن معنی اصلیش این بود که چون در اون ایام یخچال نبود مردم برای نگهداری گوشت و ماهی اونها رو نمکسود میکردند و ماهی نمکسود رو میتونستند به مدت طولانی نگه دارن تا به دست مصرف کننده برسه هر کسی که اینو شنیده میدونه که نمک مانع فساد میشه به یک تکه گوش فکر کنید گوشتی که نمک سود شده باشه تا مدت طولانی دوام میاره شما میتونید بگید درباره شاگردانش رو اظهار کرده و درباره دنیا اینو اظهار کرده کسانی که هنوز انجیل رو نشنیدن. او درباره دنیا اینطور میکنه که دنیا مانند گوشتی هست که در حال فاسد شدنه این گوشت فاسد خواهد شد مگر اینکه اون رو نمک سود کنید و بعد او این رو درباره شاگردانش گفته شما و تنها شما عامل نگهداری هستید که دنیا را از تباهی و فساد حفظ خواهید کرد این چیزهای زیادی میگه مثالهای او استعاره های اونقدر امیق هستند که هرچه بیشتر بر اونها تمرکز و تفکر کنید بیشتر میتونید وارد اون بشید و به بگیرید. اگر شاگرد از مردم پای کوه متفاوت نباشه، چطور خواهد تونست تأثیری حفاظت کننده بر مردم دنیا داشته باشه؟ مثلا اگر شاگرد گوشت باشه و مردم پای کوه هم گوشت باشند، چطور میشه گوشت رو به وسیله گوشت حفظ کرد؟ اگر شاگرد از گوشت متفاوت نباشه، گوشت رو حفظ نخواهد کرد. این چیزی در مورد شاگرد میگه. شاگرد باید متفاوت باشه به این دلیل عیسی میگه هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد چگونه میتوان آن را بار دیگر نمکین ساخت دیگر مصرفی ندارد جز که بیرون ریخته پایمال مردم شود شخصی کتابی نوشته به نام سخنان تند ایسا. عیسی سخنان تند زیادی گفته و من معتقدم این یکی از آنهاست اینجا شما با سؤالی مواجه هستید آیا شما نمک روی زمین هستید آیا شما با فیض خدا عامل موثری هستید که افراد دیگر را از میل به گناه و فساد حفظ کنید؟ آیا اقرار ایمان شما به مسیح نشون میده که شما نمک هستید؟ و آیا دلایل کافی وجود دارند که اقرار ایمان شما را اثبات کنند؟ اگر شما اقرار میکنید که شاگرد ایسای مسیح هستید اما نباشید، در واقع اون نمک میدونید به درد چی میخوره؟ ایسا میگه شما به هیچ دردی نمیخورید باید دور انداخته بشید و زیر پای مردم لگدمال بشید. او میگه این تنها چیزیه که به دردش میخورید. بهش فکر کنید. وقتی ارزش‌های عیسا رو مطالعه می‌کنید، میفهمید که او اون ارزش‌ها رو به عدی داده. در مورد شبان یک کلیسای متودیست در امریکا شنیدم، شاید بدونید که شبانهای متودیست مرتباً از کلیسایی به کلیسای دیگر میرن و ارزش جماعت اونها مربوط به این هست که چند وقت یک بار به جایی میرن. داستان در مورد شبانی متودیس بود که مشایخ کلیسا به او اطلاع دادند که قصد دارند به دیدن اسخف بروند و او باید یک سال دیگر در آنجا بماند. اون شبان از اونها تشکر کرد و گفت خوشحالم که از خدمت من راضی هستید. و اونها گفتند راستش ما اصلا چنین چیزی نگفتیم. همه ما معتقدیم که اگر کلیسای ما اصلا شبان نداشت خیلی بهتر از این میشد. شما نزدیکترین چیز به هیچ چیز هستید که تا کنون مسئولین برای ما فرستادن. به این خاطر می خواهیم شما یک سال دیگر همینجا باشید. هیچ کس نمیخواد که فکر کنه به هیچ دردی نمیخوره. بعضیها معتقدند که هر کس در شغلش خوب هست باید حقوق خوبی بگیره و نتیجه میگیرند. پس واعظین کسانی هستند که حتما به هیچ دردی نمیخورند چون حقوق خیلی خوبی نمیگیرند. خب این وحشتناکه که فکر کنیم عیسی گفته این امکان هست که کسی به هیچ دردی نخوره. اگر شما اقرار کنید که نمک هستید و در واقع نمک نباشید به هیچ دردی نمیخورید وقتی من بچه بودم یک حس شوخ طبیعی داشتم خونه وادم نزدیک یک کارخانه شیشه سازی زندگی میکردند اطراف کارخانه پر بود از گونی های بزرگ پر از شن سفید یک روز من مقداری از اون شن های سفید رو برداشتم و توی نمکدون پدرم ریختم و سر میز صبحانه کنار او نشستم و فکر می میکردم خیلی خندداره که ببینم او شن رو روی تخم مرخاش میریزه. بالاخره او فهمید موضوع چیه و بعدشم خب میتونید حدس بزنید که چی شد؟ حسابی منو تنبیه بیه کرد او شن ها را از نمکدان بیرون آورد و دور انداخت اون به چه دردی میخورد؟ اون دیگه نمک نبود و به هیچ دردی نمیخورد جز اینکه دور انداخته بشه. فکرشو بکنید عیسی این رو در مورد بعضی از پیروانش میگه ببینید این سر سرکوه با یک چالش شروع میشه. آیا شما بخشی از مشکل هستید یا بخشی از راه حل شما کجا هستید آیا هنوز پای کوه هستید هنوز بخشی از مشکل هستید یا به بالای کوه آمدید آیا شما اونجا با عیسی هستید آیا عیسی شما رو تبدیل به نمک روی زمین میکنه آیا عیسی شما رو تبدیل به یکی از هاش و جوابهاش میکنه اون چالشی که وقتی زمینه این تعلیم رو میبینید با اون مواجه میشید وقتی وارد محتوای تعالیم میشید با این چالش مواجه خواهید شد چه نوع راه حلی هستی چه نوع جوابی هستی چه نوع شاگردی هستی آیا نمکی نمکین هستی یا به درد هیچ چیز نمیخوری این چالشی ترسناکه. بعضی ها میگن وقتی عیسی گفت شما نمک روی زمین هستید منظورش این بود رومیان میدانستند که انسان بدن انسان نمیتونه بدون نمک زندگی کنه و اونها میخواستن مردم رو کنترل کنن حتی برده هاشون رو بنابراین اونها به برده هاشون با مكعب‌های نمک مز می‌دادن به این دلیل در انگلیسی به حقوق سالاری میگن که از همون کلمه سالتمانی یا پول نمکی گرفته شده اگر منظور عیسی این بوده پس او اظهاری در مورد شاگردانش کرده و اظهاری در مورد مردم پای کوه یا مردم این دنیا کرده او در مورد شاگردانش میگفته تو و تنها تو اصل زندگی بخشی هستی که مردم این دنیا نیاز دارند. این مردم پای کوه در واقع حیات ندارن مگر این که اون را از شما پیدا کنند. شما باید پایین برید و در بین اونها پراکنده بشید برای استفاده از مثال گوشت شما باید با گوشت برخورد داشته باشید به گوشت مالیده بشید شما نمیتونید گوشت رو حفظ کنید مگر این که در گوشت جذب بشید شما تا زمانی که در نمکدان هستید نمیتونید اصل حیات بخش برای اونها باشید شما باید از نمکدان خارج بشید و از جایی که هستید بیرون بیاید و به میان مردمی برید که زندگی واقعی یا حیات ابدی ندارند احتمال وحشتناک اینه که اگر منظور عیسی بوده اون مردم حیات ندارند تنها راهی که اونها میتونن حیات ابدی پیدا کنن توسط شما هست شما اصل حیات بخش هستید شما و تنها شما تنها راهی هستید که اونها میتونن این حیات روحانی رو پیدا کنند. معانی احتمالی دیگری هم هست. نمک شما رو تشنه میکنه. شاید اگر شما واقعا ایماندار نمکینی باشید مردم رو برای چیزی که دارید و برای خود خداوندیسای مسیح که آب حیات هست تشنه خواهید کرد. شاید منظورش چیزی مثل این بوده. اگر نمک رو روی زخمی باز بریزید اون درد میگیره و میسوزه. و شاید اون میگه اگر شما واقعا نمک باشید، از این نظر که پر از پارسایی هستید، با فیض خدا پارسا هستید، وقتی نزدیک اون زخمهای باز، زخمهای اخلاقی مردم میشید، این اونها را اذیت خواهد کرد. معانی احتمالی تقریبا بیشمار هستند. خود من شخصا معتقدم اون میتونه یکی از این دو و یا شاید هر دوی اونها باشه. شما اصلی حیات بخش هستید. اون مردم زندگی با کیفیت مرد نظر خدا رو ندارند این همون چیزیه که یوحنا بارها و بارها در انجیلش به ما میگه زندگی ابدی چیزیه که خدا میخواد ما داشته باشیم و اون فقط زندگی در ابدیت نیست بلکه نوعی از زندگی هست که الان و اینجا میتونیم داشته باشیم اون مردم اون نوع زندگی رو ندارن عیسی میگه اگر اونها میخواند اون رو پیدا کنن تنها راهش اینه که باید از طریق شما پیدا کنه چون شما و تنها شما نمکی هستید که بدون اون نمیتونن به لحاظ روحانی زندگی کنند. من فکر میکنم یا اون یکیه و یا شاید این یکی باشه اون مردم فاسد هستند. این دنیا فاسد هست ما اینو از بسیاری جهات میبینیم در توسعه پرنگرافی، گسترش و شیوع ایدز، عدم وجود قطعیت ها یعنی اینکه شما هیچ اصول اخلاقی قطعی برای خودتون نداشته باشید انواع نظریات و افکار به چیزهایی که مخرب هستند دنیا فاسد هست و شما و تنها شما نمکی هستید که میتونید به دنیا مالیده بشید که اونها را از فساد حفظ کنید یا شاید مانند نمک ما باید مزه حقیقی رو به زندگی وارد کنیم من معتقدم یکی از این دو تفسیر هست شاید یا این یا اون نباشه بلکه هر دو باشه شاید منظور عیسی هر دوی اینها بوده تنها شما میتونید حیاتی رو که اونها ندارن بهشون بدید و وقتی اونها اون حیات رو پیدا کردن شاید تنها شما بتونید اونها رو از گرایش به فساد اخلاقی حفظ کنید شما نمک جهان هستید ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد چگونه میتوان آن را بار دیگر نمکین ساخت دیگر مصرفی ندارد جز آنکه بیرون ریخته پایمال مردم شود عیسی شما را دعوت میکنه از او پیروی کنید و اجازه بدید که شما را رو نمک روی زمین بکن عزیزان در سرتاسر موزه بالای کوه عیسی به ما تعلیم میده مفهوم واقعی شاگرد اون بودن چی هست ما اینجا در دانشکده کتاب مقدس امیدواریم که خدا امروز شما رو ملاقات کرده باشه و شما را از آرامه، شادی و جسارت خودش پر کرده باشه که شاگرد وفاداری برای اون باشیم. دعای ما اینه که شما بیش از پیش متعهد باشید و آماده باشید که زمن نزدیک تر شدن به او اجازه بدین شما رو به کار بگیره. حالا تا برنامه بعدی دامی کنیم شما نمکی نمکین و نوری درخشان باشین که دیگران رو به سوی خداوندمون عیسی مسیح هدایت کنید.